الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد النبي وعليه وسلم تسليما اللهم لك لند على ما جرى بيداوك في اولياك الذين تستخلى تستو مل نفسك ودينك اذا خطرت لهم جديله ما عند ما عندنا المقيم الذي لا زوال له بل عند ما فلول بعد انشرت عليهم فی درجاتا بهت دنیا الدنیا و زخرفا و زبرجا فشرتو لکه ظالک و علمت منهم الوفاء بهت فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم البکر العليم والصلاع الجميل واهبدت عليهم ملائكتك وكرمتهم ببطيك ورفدتهم بغلمك واجعلتهم الذرية اليك والوسيلة العرض والك بابا قمنا اكنتمو جماتا فلا ام اخرجته من و بعضا نهملتهو في پلکه و نجیتهو و من آمنا ماهو منال حلکت براقمتک و بعضا نبسخرتهو لنفس و سالکل سالس دودن فل آخری فعجبته وجعلت ذلك غليبيا وبعض الكلوته من شجرة تكليما وجعلت له من أخير ردء ووزيرا وبعض ما أولدته من غير آب رو سنت حور دجنا و ایعص هو برو هل قدس و خل شرات له شریع بغا و ما اجتلوا منه جا و تخيرت له عوسیا موسى فزند آدم موسى خوشند من مدلت ملامت لا كما الذين بهزتنا على عبادك ولا الله يذولا وامدره ويغلب الباطل على أهله وَلَا يقول أهد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وغمس لنا لما فنقصد آیات کمن قبلن نظل و نخضاب الانم سعی سبلت الان حبیب کمن عجیبه محمد صلی اللہ علی و عالم فکان کمن تجبت و سید و صفوت من ستفیتا و افزل من دو تبیتا و اکرم من اعتمتا قدرم تاولا انبیائش و او تحت او مشارقه که و مغاربهش و سخرت لئول برا و عرض طبیل آسمایک و او دعت او و, و مایکود الانگذائه خلقهش تو من سرتو به روب و حفقتو به جبر ایلا و میکن ول مسلمینم این الَّذِينَ كَلَّ وَلَمْ يَكَرِ الْمُشْرِكُونَ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا بَعَثَهُمُ مُبَبَّنَ وَسَدَّ كَمَّاهُ وَجَعَلَ كَلَهُ وَلَهُ أَوَّلَ بَيْتٍ وَدَلَّ النَّاسَ لِلَّذِي بَنَى شیه آیاتم بهینات مقام ابراهیمه و من دخل او کان آمنا و قلت انما یرید الله لیوزه برک و مرد سهل قم مجالس <سؤال> تاجر محمد صلوات و کعله علیه وال فی کتاب بک فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الممدة في القربة وقلت ما أسألكم من هاج فوب لكم وقلت ما أسألكم الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيل رب فکانو مستدیل ایلک و المسل که دار دونک فلمن قذت ایامو اقام و لیگیت علیگی ابن عبی طالب سلوات که علی یا ارکانه و المنزل ول کل قوم انهاد فقاله و الملع و من کن مولا فالیون Man còn tố از حجی طلب داداره میاد جبرهین نازل شد یا ایا هر رسول بلغ ما اونزل ای که من ربک فعلم تفل فما بلغ سر سالت بلغ یعظه مکم من ناز اصلاف سرمود بگید اونایی که جلو رفتن برگردن اونایی که پشت مجد سر بودن رسیدن جهازش و ترار رو, رو هم قرار دادن رسول خدا بالارم شروع کرد به خود بخوندن قریب به دو ساعت خود بخان یه وقت دیدن دست علی مرتضا رو گرف بالا بود صدا زد من کنس و مولا فهادا علی و مولا هر که من مولای اویم این علی مولای اویم خدایا با که در نسل ما غیرت محتض خالص ولای اهل بیت مرتضا قرار مده من کن تو مولا فابی مولا اللهم واد من والو واد, من واد من وانصر من نسر واخذل من خذل وقال من كنت انا نبيا فعلي امیر وقال انا فعلي من شجرة ظاهدا وقال انا و علی من شجره واحده و سائر الناس من شجره شساب و اهل له محل هارون من موسا بَمَنْزِلَةِ هارونَ مَنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِهِ وَزَمَّجُوا بُنْتَهُ أَجِيدَةً صَالِمِينَ وَهَلَّلَهُمْ مِمَّسْجِدِهِمْ مُخَلَّلًا وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إلا lahu ilmu wa hikmata faqawla ana madinatul هما قولا انت اخي ولا سجي و و دم و چه مندمی و سلم و چه سلمی و هرم خالت لهمی و دمیر و انت غدن علالا و و هم ته در زیده اینیم و تنجه زعداتیم و شیعتو نور علی جان فردای قیامت شیعان و دوستان تو برمنبرهای از نورم مروی از وطن وجود خوشاب آلمتون در حالی که صورت راشون میدرخشه حولی فلجنم همه توودش وااب به من است و هنگیری هم و همساای من است و لونا ان علی لم رفل معلو نبدی علی جانگه تو نبزی بعد از من شناخته نمی و کانم dadahu hudanna min ad ذَلُوْرَ مَنَلاَمَ وَبِاللّٰهِ الْحَمْدُ الْمُتَّقِيْنَ وَالصِّرَاةَ وَالْمُسْتَقِيْمِ لَا يُصْبَغُ بِغَرَابٍ وَلَا بِفِيرَنْ وَلَا بِثَابَتٍ فِي دُبٍّ وَلَا يُلهَغُ فِيمَا الْغَبَتْ مِنْ مَنَاقِبِهِ هما هما على السوي ولا تخدو في الله لا في سن ودي دلب وغتلب صله بنوا وشدوا بنهم فود اتنوا غنا غينيا وغيره النا فذبت على اعداته بليد لم يمت سلام رسول الله صلى الله عليه که لها دینا بعد الها دی ولو امت و مسررتون علامت مجتنعتون علا قطیعت رحمه و اقصای بلده الا الگلیلم من, من رفال من قطع و صبیان و اغسی من اغسی و جرال قضا و لهم بما یرجال له و حسن المثوب ب بادهی واللا کے بس لل متحگیب وصبحها نربنا پنیکان ورب بنا مفلا والنی وخل و, و صبحان ربنا بعد ربنا و هوب العزیز الحکیم فلالت آب من اهل بيت محمد و علیه صلی اللہ علیه ماب و علیه ماب فلیب و ایا هم فلیند و بناده اون ولی مثل فلسد رفت vaiya al-lajut ayna al-hasanu ayna al-salat ayna al-hasanu ayna al-salat ayna al این ابناء الهسن ساله البعد ساله و صادق البعد ساله این السبیل و بعد السبیل این الخیرت و بعد الخیرت این الشموس و طاله این الاقمار اینا لنجم الظاهره اینا علام الدین و قواه دلل اینا بگیت الله اینا بگیت الله اینا بگیت الله اینا بگیت الله امام زمان ملک یوسف فاطمه کجاست مولا و صاحب من کجاست چه میاد و صدم جمعی که ببینیم تکیه به دیوار خانه کعبه کرده سدا من زين يا المهدي انا الامام المنتظر اين بقيه الله لو دخلوا من العسر الديار اين المعدل قد دابر وعلم اين المنتظر متى لم تبلغ اين المرتجا لزال الجور بلود وان اين المدخر لتجديد الفرائض والصلاة اين المتخير لاداة الملة والشري غ اين المأمل لاهياء و حدوده این محیم عالم الدین و احبه ای نه قاسم و شوکت المتدین ای نه حادم و امنیت شرک نه مبید و احل الفسوق ولی سیان و تغیاد ای نه آسد و فروع الغی و شداغ ای نه تام ساتار الزیغ اینه تام ساتار الزیغ والا احوال اینه قاط و هدائل الكفر والا افترا اینه مبید و لوتاس والمرد اینه مستحسل و احلل نادر و, احل و تدلیل والا اين معز الله اوليا ومذلولا اين معز الله اوليا این جامع الكلمة على التقوى این باب الله الذين نویوتا این وجه الله الذين يتمجه الاولیاء این سبب المتسل بین العرض والسماء این صاحب يوم الفتر و ناشر این مؤلف و جمل صلاح و رضا این ات طالب و به ظهول الانبیا و طالب و به دم این از ظالم و بدم المقتوله به چربلا اینک ظالب و به دم المقصول به شربلا این المنصور علا من اعتدا علیه و افزرا این الذي و لذی و ازادا خجاز و آقای مزدردی که تادا کنه داشت مستجابه این صدر الخلاق بلبره و چگوها این ابن نبی المصطفى و علی المرسوا و ابن خدیجت الغراب و ابن فاطمت الكبراب بابيان سلام امي ونفسي لك كل رضا و بل ما يا ابن السادات المغربين يا ابن النجيب واله كريم يا ابن الهداه المهدي يا ابن الخياره المهذب يا ابن القاطره اللجيب يا ابن يا ابن الخضر مثل المنتجب يابن الدموق <تصفيق> مثل الكرم يابن البدور المنيره يابن السراج المضيء يابن الشعب Yabun al-alumil-kameler Yabun al-sunanil-mashura Yabun al-malimil-mahsura Yabun al-mujizatil-mujudar Yabun al-dalahil-mashura Yabun al-siratil-mustegi Yabun al-nabahil-adiv Yabun al-mano-va-fiumil-kita yabn al dallal yunaqi yabnalaya se wal baylad yabna ddalal bangrat yabnal barahin al wadhat al بال یام شابق یابون تاها و محک ما یا داریم تو صدا میزنیم تو رو میخونیم ماقا جانا یاون یادسینال داریا و اجنا ب دونم من وقت خرابم مله الیل الا کجای آقای من کف فاطمه سرمه چشمانم میکردم عزیز فاطمه لی تشاری این از دگر رد بکر نوا بله ایو هرم تو گل و کمسرا عبر از واح و غیر ام بی توا عزیزون علی هل هر الخلق هم برام سخت مردمو ببینم اما تو امام زمانمو نبینم آگا عزیزون علیه عرل خلقه بلا ترا ولا اصمه لکسیسن ولا نجوان عزیزون علیه انتو ایتب کدونی البلوان ولا یلالو کمنی بزیجن ولا شکوان به نفسیت یعنی فداد به نفسی انسد من مغیبن لم یخلوم نار آقا درسته به نانید درسته در غیبتیم اما از ما دور نیستی آقا جانم به نفسی انت من مغیبن لم یخلوم نار به نفسی انکم نازم ما بل نفسي انت ومنج يتشاهد من المؤمن لا من اتن ذاك الفن بل نفسي انت من اجيد به نفسی انتم امتلاد نعملات و داما به نفسی انتم نصیب شرف لایساوا الامتا حارفی که یا مولا تا که سرگردونت باشیم آقا جان الامتا حارفی که یا مولا kia ya wa ila matawa خص از زیزعل یا نو جا دو ک وناظ از زیز عللا کیا ک یا خنا چور از زیزعلجرایی ک دونا و ماجررا هل مینمز وسی مع ولا لعل بكا هلل جزؤن فصامد جزاء اذا خلا هل قضيت عين قصا وجزا هل لي شيئا احمد السبيل فتلغ هل يتصل يومنا من ك بدديفنا مطان ردو منانه لکردوییت فنروا مطانم تفه و منب بمائی فقط پالا صدا مطان و قادی که من را به حوش فن و قبله ترانا و نرائی که میشم بابینی حمای با جمال نورانی تو زیارت کنی خانقاهی که به نوراب هوش فنا گردد بینا متا ترانا بناروی این میشم تو ما رو ببینیم همه جمال نورانی تو زیارت کنیم آقا جالت متا تنالا و نراک و قدر شرطل و ام نصر تراک Hacarana na hukhu bih Kuan sa ta umul malat Vagad malat al arzad و غ و زداکه حانن و بابا و بعد صلذاسب و جت صلب به ولا ستدا بهغل مددن کپ داریم وجهف تو و, و, و, و الله وبللادمی انشاالله به همین زودی بیاد الله آقا من اومد مولا من اومد حسی اومد عزت اومد اللهم انتا که شاب و الکراب و البلو و ایلی که از تعدیفند کل از آر و, و انت فقط یا غیافت فقط یا غیافت مستقی او بیدک المبتلاب و, و رئی سیده و یا شدید القواب و ازلن و به لحظا والجواب و برلد غلیله و یا منال لرشت سواب و من علی رجعا اللهم و نهن و الى ولی که المذکره و به نبی که خلق سولنا اسمتم و ملاظار و اغم سولنا قوامن و ماظار و جهل سول المومنین مننا امامار فبلقه مننا صحیحیتا زنا به بال که یارف کما و جل مستگر لونا مستگرلا و مقامما بیم میآد که به سگیم کیگییا حتا دور دلا و مفقت شهدا من خلسان الله salli ala muhammedin wa la muhammed wa salli ala muhammedin jaddih wa rasulak as-sayyid al-akbar wa la abi as-sayyid al-asda wa فاطمه بنت محمد وعلى من تفيتم ناباه البرره وعلى ولا و اكمل واتم بعد وما باختاروا فصليت على دمك فيايك وخيالت كم الخلق وصل علي غَيْرَ يَتْلَعَدَدَا وَلَا نِهَايَةَ لِمَدَدِهِ وَلَا نَفَادَ لِمَدَدِهِ اللَّهُمَّ فَاقِمْ بِهِ لَهَا وَعَذِبْ بِهِ الْبَاتِ وَعَذْلِ الْبَهِيَاءَ وَلِ الْبَهِيَادَ وَصِلِ وصلتن في ازل امره فقط سلف وجعل من ما ياخذ بعزته ابض ذهبلاناار أف رخمة ودو أو صفا و و جعل صلوات و گنوبا را بگی مافورا و دعانو بگی مستجاب و قبل علینا به وجه جل قَتَبَ اللَّهُ لَكَ رَبَّنَا إِلَيْكَ وَنُزِلَ إِلَيْنَا ذِكْرُ رَبِّنَا فَسْتَكْمِلُوا بِالْكَلَامِ تَمَامًا يناني أنسى أداء لا دمغ بعده يا أرحمة رحمة